اینا طاهر در و من جمله روایات رو که باید این گرفتن بر حضر من خبر در دست خابه مفتر برایت شدیم مفتر برایت خودیم محمد الله اون نتیجه نهایی رو اشمالا سابقا از خریم و بازی بازی اون جمعه نهایی برایت و توجیه ما از کنم چی خدمت این جمعه نهایی اینکه که ما در مجموعه روایات احل بیت ای به نام کتاب و بیان معافقت و مخالفت کتاب داریم انصافا روایات موجوده و مخصوصا همیشه روایات تو به طرف همه به اصطلاح میرون یعنی اگر فرض کنیم در روایات شما باقید در این رایی پا ثابت نباشه باشه نباشه اما تو روایات امام ساده هست و تو روایات از در احضا بیشتری بیشترین برش شده و از فرید این معلوم میشه که حسد این مطلب ثابت بوده خلاصه بر روایات ثابت یکی دو ثانی لاکه و از سنه قباری هم مختلف بود تعابیر مختلفی داشت یک نواف نبود حالا بیرادیم که بعضیاش در مسئله پسیل خودتییت بود بعضیاش در مساله تعارض بود و تعاویری هم که داشتیم در دو مقام انصافاً تعاویر مختلفی بود اما اجمالاً بود و از پردیم با به شواهد خارجی چون تلمان در معلوم سلام در مدینه فرمود بودن و در تدریم این در بایاد در کوفه که دو بود احتمال و مخصوصاً در کوفه از زمان خود امام یک یک نوع انحرافی پیدا شد که این خط انحرافی تا استفانه به هم کرد قبل از اون هم بود اما تیزیه علمی زمان امام صادق سرات الله علنی علمی شد و حرفهای های نامربوطی رو در مرد اون مثل فرقه واجبات اسیان و حرف تدریب و محسوسا این افرادی که این کارهای زشک رو می کردن. به اصطلاف ما شاید یک تشکیلات فرهنگی هم داشته. یعنی افرادی رو از خودشون به حصر ظاهر رو رو سلاح پشتیسیم یه قرار میدونم بینه از خوابان رو میکردم در کتابها تصرف میکردم حوضم اینه که این یک کاری نبوده که بر اثر و شبان پیش بیاد اثر تحمد و برنامه ریزی به اصطلاح این کار شده و منشه این شد که احمد بعد از انکشار حدیث احلیب در نمان مونساده تحکیل بکنن که اهل احلیب طریقه قرآن و سنت برد این طریقه خارجی پس این اصل این روایات تجمالا ثابت شرایط تاریفی هم معید این مطلبه این نمه کلام به نظر ما در این نمسه است که آیا این روایات به اصطلاح این ما دارای اطلاع هم به اصطلاح اصولی؟ مثل خرص که در حسیت خبر کنید که مرموم های خوی فهمدن رواده اصلاح داره که خبر, خبر سره نه نیزه هم دو تا اصلاحی که های شما مخصومن ورد میشه یک اصلاح که میگه خبر سره ها جده یک اصلاح که میگه رواده که معاقل با کتاب آیا مطلب این طوره این نقطه اینه تمام اون نقطه فهمید به نظر ما میاد با تحنمول در مجموعه روایات و تعاویر مختلف روایات اطلاع ندارن نه در روایاتی که خبر استده نه روایاتی که می معافی این تمام بحثی که چند روز یک بیه کلمه ما خود اجمالا مطلب ثابته هم در روجیت خبر سهر اجمالا ثابته هم در روجیت روایاتی که شواهد کتاب دارند و روایاتی که شواهد کتاب مخالف کتاب نیستن موجه نیستن اجمالا هر دو صابرته نه اینکه که اطلاق دارند و نه اطلاق بسن و لذا هم در روایاتی که در خبر سقه بود تعاویر مختلف بود همه یک نواق نبود در ما هم هم و مختلفه یک نواق نبود حتی تو برزش که مثلا نسبتاً معتبر بنظر ما از ما به حالتی مافوق قریتال و خالق آمنه هر دو با هم وجود دارند. این نشون میده که اجمالاً اصل متلب ثابته و این هم نتیجه نایو که ما کردیم ما از کنید به مجموعه شواهد مراجعه میکنیم و ساقت رابی یکی از شواهد وجود مطالب مزمنش با موافقت مزمنی و با روح سنت و سنت مرگی عوض صلی این هم نقطه دوبونه یکی از شوارد دوبونه شوارد دیگه هم موجوده فقط این دوتا نیست اما اینکه به بین این دوتا نسبت تنجی کنیم این نسبت تنجی درست است چون اطلاعی نداریم اون چه که داریم به اجماله اطلاعی از چه در مقام تعارض چه غیر تهاروز ما به اختلافی به خاطر اینکه با شواهد کتاب با شواهد سنت نمی سازه رد میکنیم. عده از رواتم به خاطر که با شواهد تاریخی نمی سازه رد میکنیم. عده از رواتم به خاطر اختلاف نسخه بر تردید در صحت نسخه رد میکنیم. احساس نداره ببین. روشه این مجموعه شواهد درسته. پس اون نکته فنی که بعد از چند روز روایات اون دین چه روایات بود جل خبرچله و هر وستاق و چه ادله خبر مطابقه با کتاب اون خلاصه بحثش اینه اجمالا ما روایاتی از اهل بیت در این جهت داریم این صاحبت چون اجمالا روایاتی در این که اهل بیت دستور دادن لحظه روایاتشون بر کتاب سنت داریم نمیشه این روایات رو انکار بکنیم مضاقه که برزرش معتبر ما داریم مجموعی شواهر لکن این نماری کلام اطلاع نداره این خلاصه بحث ما من راجع به اهل سنت همچنان صحبت کرده دارم که اون حدیث مطابر کتاب حالا من فقط به اندادی تذکران مایی که این مسئله رو در زور فتاقای اهل سنت و مواقع اصولی اهل سنت دخونیم این رو متعرض میشیم این جلد سیه از بحر المحیم. که مال به اصطلاح بدوندین زرکشی ایشون دوما دو این توی مواقص سنه توی صفحه چارتا به تا چارتا یا در چارتا هشته یه صفحه اخورده مسئله در جا مطرح کرده ایشون تأدیرش اینه لا و عرض کتاب اما بحثی که ما حالا داریم قال اینا سمعانی که مرد معروفی خاندار سمعانی چند نظر هم که یکی کنان تا کتاب علاقه ساب نخود یک کنان جز اجلای علمانشون هم و ذهب جمعایی رو حنفیه الى رجوع و عرضی اینشون نسبت الان من چون پرست نشد آراج اینها رو واقعا بگیرم این اگر باشه من همیشه ارز کردم در احادیث ما دو تا رو در نظر بگیریم محسرن همیشه گفتن تاز نگاه کردیم یکی مالک و مالکی ها یکی هنفی ها و ابو حنیفه چرا؟ چون مالک پقیه مدینه است و میراستار مدینه است و روایات ما در مدینه تادر شده یعنی امام رو بود شدید ابو حنیفه و احناف هم در کوفه هست مثلا فرق را همیشه در ذهنتون باشه هر مطلبی بعد و حمید همیتو و از بیان استفاده کرد این ممکن است در تفکرات ما و میراث های ما تاثیر بگذاره تاثیر عمیقی است و هرچی در مدينه باشه ممکن تأثیر بگذاره روی امام تاثیر شاکی موثر نیست حالا شاکی اولا موثر با امام مصطفی جزا و برادر الله نگر امام موسیم جهترشون محصر اما این دو نفر چیه محصر؟ اما در حقل هم که در مهادی سعاد براسه همه هزار حضر جهاز آقادی شده این دو نفر اگر این درست باشه جماعی روحنبیه چون من دیم خودم خیلی حالا بحث راست دارم به یا به منجردی که در کتابشون آمده قبول نمیکنن. این احتمالا یه مقداری هم در کوفه تو روایات شما روایات ما از کوفه است یا خون دیم یه مقداری در کوفه تحصیل گذاشته باشه به خاطر همین رعی ابو هنیفه در با فتاقای ما. محتمل این تاثیرش باشه ها این حتبریدی بعد داره که فعلا یک کنفر کتاب مایدون و علا خلافه خوبه اینجا تغییر اینه ما از کرد مردم استاد مثلا گفتن دو طریقه زاریم طریقه اینجه بخاله بیشتاب طریقه اینجه موافقه او که خود عبارت هر رو پستر در عبارتی که الان که از عبارت کوفیاری ما یعنی کوفیاری احرسانت من موافقه با تو جای ما لن یکان فرکتا ما یک رنگا علا خلافه کوفیارت میکنی موافقه رو گریم ما مالا یکان علا و لذات شور و با شما اجل این باشه موافق کتاب لا تقبل موافق کتاب این عبارت نشون میده که اونی چیزی در مورد بوده اخلاق مش معتبر بوده همین بوده مطابق کتاب و اونی که مخالفت کتاب می اون مخالف کتاب باشه و اونی که مخالفی نیست نا موافق اینم یک توضیح دیگه توضیح اینطور گفتین تو این که هر دو رو با عنوان اجمالی بگیریم مطلق نگیریم یعنی مطلق و اصولی نگیریم پس تا اینجا دوست رعی در این حباره و الله رده و علمینه رهده احسران متکلمی متکلمیشون عویلگره هست احتمالا رو عوائل محسوسا محسوسا بگه یه خبر وامل مثلا چیزی نیست ما باید برگردیم به همون اصول کلی و چارشوهای کلی, کلی, کلی کتاب بساندن شاید مثلا امثال یونسیم و عبدالرحمن که از مزرزان ما هستند و عقلیگران هستند، عقلی هستن اینا, اینا همین روزه متکلمینی که بعد ها گفته شده از روزه معلوم میشه ایشون هم به اصلاح همین مطلب رو گرفته باشه و از به اصولی خبر الواحد و سقدر زیف و باطل بودنش من وجود اربعه این از در اونسون اخذ از وجوه اربعه احدها وجوه و الله اول الارض و و قبول خبر راش او به موافقت کتاب و و ضیاعه به ذک و را و ضیافت او به مخالفت اینجا و در همه این یک سمه از سنت سابه دازه رسول الله اون که وهي و هی از ثم دازه به استفاده سمه دو این دو سا پر اینه علا عرض این دوبار بیشتر شوارد و ببینیم من مثلا بیرتون نماز حتما واضحه به مثلا قبلت تقدیم مثلا سوال لست برداری به مرمی خب اینجا قبولتون چون نمازی همه بسید مشهوریه نیده که این مشهور یه رواهات واحدی چیزی رویه که مشهور انجام نمیدادن فه امکانت مشهورتن ز عموم بلوابه ها و فه امکانت مشهورتن این که بود ول و خبر و شارسون اما اگر این حادثه مشهور بود فهر امور بر ما او خبرو 16 کار واقعیت ضیاءتن ضیاء به را این هم جو باسه و و کذا امکان حکم الحادثه در معتقله از سلفا اختلاف ظاهرا اگر معلوم بشه که صحابه با هم اختلاف دارن مثلا علی در یه چیز چیزی میگه عمری که یه بگه مثلا و خلافشون معروف بود. یک، دو، و حدیث. یه هدیه از رسول الله شد. شده بعد مختصر در کوتوله راهان آمده اختلاف صحابه لکن هیچ چیز که نمی‌تونم بالا رسول الله. من حالا هدیه سلیبی قال رسول. این جدی مذهبی که از آن جهان می‌خوایم. باید پس صار صحابه اختلاف داره این که اومول باشه اومولا میشه فروخ یا نه خب نه خداینا نمی اومید اول ندوفن میشه عمر که این وقتی که میشه علاوه که اون ما بعد حالا اختلاف دو اما هیچکدوم از پیغمبر نقل نکردن مثال بارستر دادی که شطر از علی رو بده نرد کردن درسته که با از اومن نعرفتده اول دفته جایه دید بعد دفته جایه خب این اختلاف هست به این صحابه هست اما هیچ کدون از این ها به پیغمبر نسته داردن خب ما حدیث سکونی داریم که پیغمبر سنگونی صاحب و شاهی مینیم چندن خب این معروفی یک مطلبی به اختلاف خیلیم هست کیم چونم نه از پادر رسول دام از همگونی یه دنبال کردن سبب نه پادر رسوله بوده شود دنبال پادر رسوله بوده شود یکی که این کدکها این و حکم الهادیه من محتلفه نه هرگز آنها عقلاست ماش میشوند هرگز عقلاست کسیشون سه دارند نه قبول میکنه دو دارند به ما یکی قرائن دینی یکی قرائن عقلاست این دو دارند یهیشون خاص رال نیگفته دو دو دینی هست که دو دو جامعه دوشان مثللا با ابو زید نسبت به کلام ابو زید و اما اروبای صحن نبی انه قال ما آتا با اتاکم کن اني تحرزوها علی کتاب الله فلا صحت لهتج الى ارضه علی کتاب اگر تفسیر درست باشه خود این حدیث رو با کتاب و ارضه بکنید خود این حدیث بله لهتی جراعت و علات و ما این حدیث با خود این تمام نرجی نیست ما یدل علی خلاف ها و به قول تعالی ما رسول فاورو معلوم میشه خود اختیاره رسولا به دسته موضوعیت داره تا این حدیث قبول بکنیم با ما یدل نمیجوری یه اگه قبول این حدیث فرجاست این چون در حاشیه این محقق حساب نمیشه اصلا این حدیث مرجوعه موضوعه تازه این موضوع اعلا درجه اشراق بر حدیثه ایشون نشون موضوع و سبب بیان و دینی من چون این جلد نگاشتم جلد دسته پیدا نکردم تمام همش نگا نه که مرزمش نگاه نزدیک نواد در مگر چیزی در اگر آوری که در باهاشون دارن کتاب در بحر المحیط رو تو بینشون نگه یه چه دیگه دیگه دویی در درمیش علایه حاله ایشون در ها حدیث و لم نجفیه ماید الله علا سهتا بل ماید الله خلاف او و ما آساقم رسول بعدشون بعد ایشون میگه برند نصمعانی کلامهو ایشون در قرن و اونی که من چیزی آرفت پدر پدرشون مرد باشه جلبی ایشون قرن از حالا الخبره هدتون پی نفسیهی ازاد سبر ایشون قبول میکنه ولا یه عرض او و لحاظا جرد اونا تخصیص عموم کتاب در خبر که اگر پی نفسه او جرد باشه در تخصیص کتاب بکره بکره و بکرده که قارل قفال شاشی منطقه ایستن بیگه همین طرف های خارد منطقه ها پی کتاب یه قد او جبر با او شاور اتباع نبی ولخبره و که نبودن تقویع الهوا آمده، لهو بقبولی و اعتقاد صحیح واجب ولی و ایمان یکون المواتر از الكتاب که او تأییدم، ایمان لایج الكتاب، و او است من از کردن از لاتر کلم که یعنی دید دو سه زیاد. اگر ما این چیزی رو قبول بکنیم شاید نظر بیم باشه که سونه در کتابه این ناظره به کتاب مراد این باشه رو به نهل تخصیص میشه بعد بعد دحسی با رو میکنم اما این چون متاخرم تیدیه حالا بکنه اونی که معلوم میشه اولین بار این وقت مفرح شده محلح راست باشه از همون قرم دوم به نهل سنت مفرح بوده از همون قرم دوم مفرح بوده که آیا خبر یا آن از برد کتاب هم در اینجا اشون از کتاب رساله این نهارو میکنه بله در اینجا من خود رساله داشتم. بیشنه بیشنه من شافعی داشتم بیشتر که داشتیم که که متن کتاب مفصلتر نگاه کنیم و قد سوئل شافعی بران سوال انهن من نبیه قال ما جا اکم انی فعرضو علی کتاب الله فما وافقهو فعنه قلتو وما خالقهو فلم اغرهو هست کرد این مطرون مختلفه و اینطوری مواقع و بعد اینطور میگه: ما روا هذا احدون یسبتو حدیثو کسی که حدیثش قابل قبوله اینه کسی نقل نکرد شاقی اینکه دارو صدی نوازه پنج روزن که هم کردن شای نوازه پنج روزن حواقب غندو فی حدیث ما فیشه سغیره ولا کبیر اصلا ما همچی چیز رو نداریم تو نقال و ها بهی روایتون منقطعه ای این منطل انرجل مجهور و هم من من انهو مثل ها بهی روای فیشه ما قطعا نمیتونیم این محضر رو قبول بکنیم این پس معلول شد که این حدیث خلاصه بحث چون من خلاصه بحث رو بگیم خلاصه بحث تا که حدیث در میان اهل سنت یا حکم به بعض اشکردن از همون قرن دو همون محل کلام بوده و چرا از کنم نتابه من سالان با کتاب الامشافی نسیدن منوز روزیار کندم از کتاب رو فکرم میکردم شابی در پتیش ناخت حدید خیلی خوبه یعنی انصابا بحث سندی او خوب انجام خوب میکنه خوب میاره در بخش خیاس هم نسبتا خوبه خیاس های خیلی گفت که میشونی و معروف انجام نمیده خیاس های خیلی دور از ذهن و هم معبول خوبه هم معبول در حد خود اونها بله بعدا یه روایتی بله بعد از که رواجی اولید که کتاب رو تخصیل داریم به سنت رسول الله این راجعه به پس معلوم شد که این مسئله و حدیث و حجیهت حدیث بر قرآن این سابقه داره در کوفه و معلوم میشه که در نیمه های اول برمه اول این مسئله مطرح شد که حدیثی به قبول میکنیم که شواهد کتاب داشته باشه ولیکن خود علمای اهل سنت و حدیثی هم به نقل کردن خود علمای اهل سنت از همون نکرده حدیث عبور نکردن بلکه نگاه کردن آن اینجا تصریح کردن که این حدیثم موضوعه از فرم کرا موضوع رتبه بسیار بالایی به هر حدیثم را دریج میگن موضوع این یعنی جهری از در رسول الله نصد بازده و لذا هم هیچ آثار رو بر حدیث جعلی باید نمی برد. این حدیث تو اصولا موضوع و مجهول می دارم. و معلوم شد که اولین مناقشات هم در سند حدیث هم تو فکرانه هم کردیم دوم و قرم دوم شاقی حدیث بررسی کرده گفته که این هم منسله هم مجهوله هم ذریع در سندش هست و این رو ما به هیچورد نمتیم قبول بکنیم حوشن شد تاییم؟ تست کردیم اما در روایات ما است. صاحبا این با قبول بکنیم اینو اشتباه نشه و این ما پردش با زبانه صدا کاملا واضحه چون از که این روایات در مدینه صادر شده و نقلش در کوفه شده این در روایات ما ثابتیم بله در روایات ما ابهام داره به اطلاقی هم نداره الابهام ده لحظه که بعد در درع و در البته این ابهام میشه کرد چرا را از ما به عنوان مرجع نداریم در شیعه ما در شیعه داریم که و قبول روایت داریم ترجیح نداریم خوب دقت بکنید اصلا وقتی بین امر و غیر احادیث روایت‌ها مختلفه از این امیرالمومنین متقاضی که مثلا بده این روح. همون باید صاحب بگم یعنی این تاروت چند جوری یکیش اینکه جون گفته و برای شناختن دروب هم حلتی می کنم دیار ترجیح بده یکیش اینکه حدیث ناصخ و منصوب داری نفر بعدم می کسی بوده با که تمام صحان رسول الله تمام زبط کرده ناصخ می دهن می ده. اشاره بخودشون. یعنی راه حلت تاروت رو به حلبه به خود از این صحبت ترجیح این حجت اونم حجت این مزیت داره اون مردیش از این صحبت هم اون صحبت اساسی که مفتحه در روایت پس ما اصلا ترجیح نداریم تعارض هم مرجعش ارجاش به مسئله حجت ولا حجته از آیهانش اجمادن در روایت احلیت هم اما اینکه که داشته باشه نه اما در روایت احلیت سنت معروی شد که خود از قبول ندارن حدیث را مشعول میدونن موضوع میدونن لکن محضرات کله در مثلا ادهیشون در فوقه هایشون از احناف و ادهیشون از متکلمین عقلی جراها و این یونس بن یونسون عبدالرحمن از عقلی جراهای ما مثلا متکلمین ما اگر این باشه حدیث را میشه گفت جونسون عبدالرحمن دو تا آواه مستند این دو برای اطلاام چه اهل سنت چیه که دنبال این مبنا رفتن خلایش این مبنای رو با در خبر در روایات اهل معارف مصدق کردن قابل نیست اجمالا نه. هر دو خوب نیست به نظر احرا از و توضیح هم دادیم ما یک روایت صحیح داریم که در کتاب کافی آمده از محمد بن اسماعیل فضل که همین استاب مریم اما ارز کردیم اجمالا این طریق رو قبول می کنیم طریق محمد ابن اسمایی درکه چون در این گا معارض داری معارض به این معناه در کتاب محاسن ان ابی ایوب مدائنی ان ابن ابی آمه احتمال می کنیم این رسی ابن ابی آمه شکلی درست نباشی یعنی احتمال می این خدا خدای یعنی نکرده محمد ابن اسماییل اشتباه کرده پرده درست داریم که در قدره این نسخه از کتاب عمر اومد یه قابل اعتماد نبوده این نسخه در قوم توسط بردی تندش اشکال داره در نیشاور بوده او ما به این نسخه میمونه علایه های اصحه هسانی پیش ما همینه اصحه هسانی اصح دارین حدیث پیش همینه و این هم خالی از اشکالی انصافا در روایات شیعه هست اسابش این چیزی با اون به فقط چه ما کرد این روشن نیست البچه چرا ازهااب نسبت دادن در کتاب بیا بیادده. تمام انمسافت روشن نیست از اهل ب روشن در حال سربار از اهل روشن الده اهل سنت خوبک می کردن که موضوع حث در پیش شماان جمعتون نسبت داریمیم مینی که ام الان میتونیم بیم که روشن نیست سه روشن نیست. اما به این موضوع و مجبئولیت این الان نمیتونونه رای برای ثبات مجبولیتش عمل ما با اهل سنت در اینجا در اینجا این راجع به این حدیث اجمالاً و خلاصه بحث بعد از شواهدی که ذکر شده برای عدم و حجید خبر که اینجا تعجیم هست مرخوم آقای کوئی نایو و مرخوم شیف انساری او این مطلب رو تعجیم همی که شوش آقای کوئی نایو بردن یه حدیث واحدی که امام سلامالله دستور میزنید به حدیثی عمل میکنی که میدانی علم داری حدیث باز این مشکل اینه به روایتی این روایت در کتاب در دو تا مصدر آمده یکی در کتاب ستفار آنازد و این کتاب جامعال احادیث. همین جلده یه باب شیش باب تا عارض روایت روایت الاجیه. حدیث سی در دو مفتر این حدیث آمده یکی در کتاب بسائر و درجات مرحوم یکی هم در کتاب سرائر آمده سرائر در آخر کتابیشون نرمی کرده اما در بسایر درجات اینطور آمده حدثنا محمد ابن ایسا مرحوم سفار نرمی کنه از محمد ابن ایسای یعنطینی آخرین در شهر ایشان گفته نشده اما شواهد نشون میده که ایشان ایران آمده صاغرا در قم که آمدن ایران ارتش قال اقرهانی داوود بن فرقدل فارسی این غیر از اون داوود بن فرقد معروف خودمونه احتمالا مثلا فارس و شیراز به طریق به ماه استان فارس این نکته هم دکتر خوبیم ما ایرانیم یم فارس عربا فارس میشه همون مثل آوکانل علماء لبند لثنویل ل... هوریجالو من الفارس عربا فارس میشه ایرانی فارس میشه یا فرس یا فارس اگر اینی داوودم مالی داوود بن فرقه فارسی فارسی یو کتابه او ایل ابراهیم حسن صادق اصلا من یه وقتی دیدم هرچند گشتم باز پیدا نکردم خالص شده اشتباهی اما این واقعیت داره که مرحوم محمد بن عیسیای خفینی استفتاءاتی که از امام حاجی شده جمع آوری کرده بوده اما الان به تو که رجالد نجاشی یا شیخ اسمی کتاب در ننوشتم حالا یادم میاد در این مدت یک وقتی این سیکوتات یه کار مهم یه جای دیگه ایشون مسائل رجالی داره اما دولت پر تلاش نکرده اونایی که چه من ازش اما به هر حال چی این کتاب اسمش از مصادر باشی یا نباشه این واقعیت است این واقعیت که واقعی محمد بن عیسی یعقینی استطاعاتی که از امام هادی علیه السلام شده زیادن اصلا اول سفررا نه بعد جام چرهاش دادیم تا این مقاصد به مناسبت اون سیرت فرانسه به عرب و یا باصما سیرا اون هممال محمد نیساس این به اصطلاح هست علیه همدلله مقدار زیادی از این استفتارات به جایی که ما الان میگهیم استفتارات میگوستن مسائل و رجال و عجرت ها ایشون به عنوان مسائل و رجال به حضرت حادی اون وقت ارز کردیم به طور متعارف همینجا برای این بحثای متعارف هم مثلا مروم آرخوی دیگر میهد حدید ضعیفه جهالت داوود ابن فرقه در فارس راستشون مجهوله از کردیم این جهالت ها مذر نیست چرا که اینا راوی نیستن یک نفر شیعه بود این, این دیگه نباید دنبالیم بگردیم این آلت کتاب را شدید افراد عادی هستن اینها را افراد نمی راه شناخت صحت حدیث و ارزیابی حدیث به اینها نیست راه این احادیس و اون کسیست که از این شخص نرد میکنه و کیفیت نرده شده اون رو با حساب جد. مثلا محمد بنیسا مرد بزرگواریست تقرد جرد و اما وکی نیست وکیل امام آدی نیست اما خب مرد متعلق وقت گاه میگه فران گفت کتب تو اله و جا الگان بعضی وقتا اینجوری میگه اقرعنی داود بن شتباه او ایل اوال حسن علیه السلام و جواب او به خاطری اینجا یعنی اون نکته کلام محمد بن انسانو ابریاحت نیست اون محمد بن انسان که من خودم جواب امام دیدم تو بعض از نامها این نیست اینجا الان هست بله پس اگر ممکن است بگیم اگر آقای محمد ابن ایسای یختینی وکیل حضرت نبوده از سجا خط حضرت بیش راخته مثلا تبیلید کرده چون عرض کردم حضرت در سامر را خودشون و عرضت حسکری تحت نظر بودن افراد بیشترین راهشون همین توقیات بوده محمد ابن ایسای یختینی میگه داوود ابن فرقه نامه ای نمشته بود بر حسن سالس و من دیدم فقال نامه این بود نسل که از علم منقول الينا، ان آباء که و اجداده که صلّا الله عليه و آله و سلم تذکرده و الينا فی رواياتي که از رسول الله و اجداد شما رسيده مختلفون فیه کيس حال عمل دوبي علا اختلاف علا اختلاف ماني مع مع ما متشکر او الرد الی چی مختل مختلف سری مختلفی یا ما به شما مراجعه بکنیم شما این اختلاف رو بدارید اسم شما گذشته سابقه یاد دارید سابقه نداره احادیث عام از کلی که از نکاتی که از زمان موسی جعفر کم داریم زمان از ازاده زمان اصلا بیشتره بعد میاد تا زمان حضرت بقیۃ الله هم هست که مثلا دو تا حدیث از آباه شما رسته کده رو میکره عمل بکنیم این همینه اول رفض و اله مختل رفی یا اصلا ما به اون روایات عمل نکنیم از شما سوال بکنیم که شما وظیفه رو بیان بکنیم فکت علیه السلام امده ما علمتم انهو اولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه و علمتم. و حضرت علی هر چیزی در این كلام ما صولونا یعنی بوله ده به قبول نکرد هر کی هم نیروی دست نگه دارد سر و دو میدان محل شاهه محل شاه از این حدیث مبارک امام شعر کردند در قبول خبر علم ما علم تو فزن حسست و حضرت ما علم تو انه بو قولونا پس ما به حدیثی عمل میکنیم که ارز داشته باشیم، تذکرات ما باعث شواید باعث بشه، تا وصول اوری پیدا بشه. ما علم تمنه و امورنها فرزمو و ما لم تعلمو فردو و علما. این محل استنتاج، البته ساده، در دره فارسی رو، یعنی اگه بخواید در حدیث اشکالی بکنیم یک حالا غیر از اینکه اون را به چون محمد نریسا رو این جهازش رو نمیدونیم که واقعا با خط امام آشنایی داشت از اینشون زیاد کرده، حاضرش جمع کرده مثلا بگیم چون کار این بوده که چون کارشان چون این کار من با حق حقلت آشنایی این یک روایت یک تهر این روایت این خبتنه بر این و یه شنون کرده و خصوصا جو در جوابه بود به حقیقی این نصیف مانه میشه به جوابه بود حقیقی یا در یا مشافهتن نه نه که هم درست گفته حیات احتمالا احتمال دادیم باشه نجاشی من اصلابش رایی که رعن از مدر محمد انتر انمو به مسائل مسائل شما باشیم من چه که مسائل و رزیان از دارم از دارم چه از دارم از دارم چه از مسائل نخودش تو بعد نقطه چه شو من در حکیه می‌فنم خب برد مثاله می‌دید این توریات من دیده حسن این توریات این توریاد محمد نیسا این سلام خواهر این کتب اگر ثابت بشه این توریاد حسن به امام آرادی حسنی از از اون نقطه شید این چند اسرار در نتایج رژیل آداب هتل سالند که ادله از, از اینها اسم اینجا گذاشته شده لابهله هتل سالند. اما ادله ای که هم برامو همیشه یومشک گرفته میشه کتاب تئری لعب المدینه اصل و معنی آن سلام علیانی نلای خدروشک صم در رویه و آخر در رویه. این کتاب اونم رویش کن میشناسیم. همه کالسین سرگرم کتاب تئری. اگر این محضبی که من تو ذهن هر تا دوست درد یا چیشون تو استفضاعات از حضرت حاضر جمع کرده تو تمام اونها اله جهنه لاعبان حسن کرده. تو تمام اونها ال جهنه لاعبان حسن ساله این هستی بوده بلا بکنه از ساله این جده ممکنه مثلا اونجا اشار جهنه حدیث مزمن هست قبول رواد مزمن قبول ندونه حدیث مزمن قبول اگر این مطلبی دو رو من هر شب گفتم که قسمت نیست زبیر کلی حسن صابتی شواهد هم همینطوره حدی اول حسن دیگه من یک جو دیدم که مسائل درجات الهی حسن صادقی کجا اومده مثلا یه پرسش کردم یک واسطه مثلا 20 سال بعد یا 10 سال اون یه گذشت این دیدم سند دوم حدیثی دار. در مسائل تو اونم صحبت بوده با یا باطلیس ان شاء صلى الله على محمد وآله واصحبيه <تصفيق>